به نام خدای یگانی مهربان سلام افسانه ها اگرچه در سرزمین های مختلف به وجودون بدن اما وطن خاصی ندارند و متعلق به همه مردم جهانند. در برامی هزار افسان، ای رو از سرزمین ترکمنستان براتون نرمی کنن به نام دختر در بخچت چه داری؟ این افسانه برگرفت از کتاب نوزده افسانه از آسیای میانه ترجمه و تعلیف یوسف قوجقه سیگاری در گوشه ای از ترکمند صحرا کشاورز ساده دل و زحمت کشی به همراه دختر و پسر کوچیکش زندگی میکرد. مرد کشاورز که سالها قبل همسرش را از دست داده بود برای آسایش و راحتی فرزندانش تصمیم گرفت همسر دیگه اختیار کنه اما از روزی که پای این زن به خونه مرد کشاورز باز شد بچه های کشاورز روز خوش ندیدند مرد کشاورز صبح زود برای کار به مزرعه می رفت و غروب خست و کوفته به خونه برمیگشت. در این مدت نامادری بچه ها رو به کارهای سخت وا داشت و گاهی هم بدون هیچ ای، اونها رو به باد کتک می گرفت. روزی وقتی کشاورز مثل همیشه خست و کوفته به خونه اومد با ناراحتی به زن گفت. آه دیگه از کار تو مزرعه خسته شدم نمیدونم چرا با این همه کاشت محصول خوبی آیدمون نمیشه زن با لحن به ظاهر دلسوزانی گفت تو بیشتر از توان خودت کار میکنی من همیشه نگران سلامتی تو هستم میترسم یه روزی خدایی نکرده زبونم لال از پادر بیایی مرد کشاورز گفت مطمئن باش اگه بیشتر از اینم روی این زمین کار کنم بازم محصول خوبی به دستم نمیاد مرد کشاورز لحظه ای سکوت کرد و بعد ادامه داد شاید زمین ما جادو شده یا اینکه نمیدونم. ولی باید یه علتی داشته باشه زن که انگار منتظر شنیدنی چون این حرفی بود بلافاصله گفت میدونی چیه؟ اجداد ما همیشه این که زمین محصول خوب بده بهترین و عزیزترین چیزاشونو نظر زمین میکردند مرد کشاورز نگاهی به زن انداخت و به فکر فرو رفت زن دوباره ادامه داد من مطمئنم اگه ما هم عزیزترین چیزهایی رو که داریم نظر زمینمون کنیم اون وقت محصول خوبی به دست میاریم وگرنه از گرسنگی تلف میشیم مرد کشاورز توی چشمای زنش خیره شد و بعد نگاهی به اطراف انداخت و گفت خب تو فکر می بهترین و عزیزترین چیزای ما چیه؟ زن لحظه ای سکوت کرد و بعد با لحن به ظاهر غمگینی گفت ما ما عزیزتر از بچه ها چیز دیگه ای نداریم اونا برای ما خیلی عزیزن و بعد به ظاهر عشق ریخت و با بغض ادامه داد باور کن. این بچه ها همونطوری که برای تو عزیزن برای منم عزیز و دوست داشتنی هستن ولی ولی خب چاره چی؟ زن گفت و گفت و گفت تا مرد کشاورز ساده ساد دل فری به حرف های اونو خورد و از روی ناچاری تصمیم گرفت بچه هاش رو برای پرباری و خوبی محصول قربانی کنه فردای اون روز صبح زود هوا گرگ و میش بود که کشاورز از آلاچیق بیرون رفت و کمی دورتر مشغول تیز کردن چاقوی خودش شد. اون از ته دل راضی به این کار نبود ولی فکر میکرد جز این کار چاره ای نداره. پسر کشاورز که کشا شب قبل صحبت های پدر و نامادریش رو درباره قربانی کردن اون و خواهرش شنیده بود، فوری به سراغ خواهرش رفت و تمام اون که شنیده بود براش بازگو کرد و لحظه ای بعد اونو خواهرش که بخچه در دست داشت با احتیاط و پاورچین پاورچین از آلاچیق فرار کردند. پدر رو که تیز کرد با قدم کند و سنگین به طرف آلاچیق رفت هنوز چند قدم بیشتر بر نداشته بود که صدای زنش از داخل آلاچیق بلند شد آهای مرد کجایی بچه ها اونا فرار کردند مرد کشاورز قدم هاش رو تند کرد و خودش رو به زن رسوند <تصفيق> چی شده؟ بچه ها کجا رفتن؟ زن با عصبانیت گفت خبر مرگشون فرار کردن. حالا مرد کشاورز هم از فرار بچه ها عصبانی شده. با خشم از آلاچیق بیرون اومد و با چشمهای قذبناکش دور دست ها رو برنداز کرد و شبه بچه ها رو دید که مثل باد در حال رفتن بود زن گفت معطل چی هستی؟ چرا اون زلیل مرده ها رو دنبال نمی کنی؟ مرد هم با سرعت در حالی که چاقوی تیزش رو در دستش گرفته بود به دنبال بچه ها برافتند آدمهای پدر بلند بود و مکم بچه که متوجه شدند پدرشون اونها رو تعقیب میکنه با نگرانی و استراب به این طرف و اون طرف دویدن پدر هر لحظه نزدیک و نسدیکتر میشد دختر به کوه سفیدی که در مقابلشون قرار داشت نگاه کرد خورشید تازه داشت از پشت کوه سفید بالا میومد دخترک با ترس و ناآرامی گفت ای خورشید مهربون میبینی که پدرمون میخواد ما رو برای زمینش قربانی کنه تو تو تو میتونی به ما کمک کنی خورشید طلایی رنگ لبخندی زد و از دخترک پرسید ای دختر مهربون تو یه چی داری دخترک فوری جواب داد شونه شونه چوبی مادرم خورشید گفت زود باش اونو به پشت سرت بنداز دخترک با ناراحتی گفت این شونه یادگار مادرمه دلم, دلم نمیاد اونو توی این صحرای براهود بندازم برادر با تندی نگاهی به خواهرش انداخت و گفت زود باش فوری شونه ی مادر رو بنداز ما باید زودتر از اینجا بریم دخترک به پشت سرش نگاه کرد پدر به اونها نزدیکتر شده بود دخترک فوری شونه ی چوبی رو به پشت سرش انداخت شونه وقتی به زمین افتاد بزرگ و بزرگتر شد. بچه ها دوباره که به پشت سرشون نگاه کردند بیشه ای پر از چوب و نی دیدن که بین اونها و پدرشون فاصله انداخته بود. پدر با چاقوی تیز خودش شروع کرد به بریدن نی و چوب ها. مدتی که گذشت راهی از میون بیشه ها باز شد، و پدر خشناک و عصبانی از اونجا گذشت و دوباره به دنبال بچه ها دوید خوشی در پشت کوه بلند پنهون شده بود. بچه ها با پاهای خسته و نفس نفس زنان همچنان می دویدن. دخترک با نگرانی به پشت سرش نگاه کرد. چیزی نمونده بود که پدرش اونها برسه. دخترک با آه و ناله رو کرد به کوه بلند و گفت ای کوه مهربون می بینی که پدرم میخواد ما رو قربانی زمین کنه. تو تو میتونی به ما کمک کنی؟ کوه بلند صدای گرم و مهربون دخترک رو که شنید ازش پرسید. دختر مهربون. توی بخچت چی داری؟ دخترک با ناله گفت هیچی، هیچی، فقط، فقط چند تار از موهای مادرم کوه بلند گفت همون چند تار موهای مادرت رو به پشت سرت بنداز دخترک لحظه ای تردید کرد دلش نمی اومد. تار موهای مادرش رو از خودش دور کنه و باز برادرش بهش نهیب زد و گفت زود باش، معدل چی هستی؟ میبینی که پدر داره به ما نزدیک میشه؟ و دخترک تار تارموهای مادرش رو پشت سرش انداخت. هر تار مو بوته ی خار تیغداری شد و تمام صحرای پشت سر بچه ها رو پر کرد. پدر که خودش رو در مقابل پر از خار دید، فوری چاقو به دست تند تند شروع به بریدن خارها کرد و مدتی بعد، راهی از میون خارها باز شد و مرد کشاورز دوباره بچه هاش رو تغییر کرد همچنان پیش می تا اینکه به به سر سرسبز رسیدن و شدت خستگی روی تپه نشستن ولی هنوز چند دقیقه از نشستن اونها نگذشته بود که مرد کشاورز دوباره به اونها نزدیک شد بچه ها سراسیمه از تپه پایین اومدن و از پدرشون فاصله گرفتن غروب از راه رسید و سیاهی همه جای آسان رو پر کرد برادر دامان خواهرش رو چنگ زد و گفت دیگه نه کوف پیش پیشرومونه و نه خورشید بالای سرمون. حالا چیکار کنیم؟ دختر با نگرانی به آسمون نگاه کرد و با صدایی رسا گفت. ای ستاره های زیبا پدر میخواد ما رو قربانی زمینش کنه. شماها میتونین به ما کمک کنین؟ ستاره ها چشمک زنان گفتند. ای دختر مهربون تو یه بخچت چی داری؟ دختر دستش رو در بخچه کرد. و دو گوشواری نغرهی بیرون آورد و گفت اینا گوشواری نقرهی مادرمه که قبل از مرگش به من داده. ستاره ها گفتن اونا رو به پشت سرت بنداز. دخترک باز هم دلش نمیومد اومد یادگار مادرش رو از خودش دور کنه ولی وقتی دید که چاره ای جز این کار نداره چشمش رو بست و گوشوارهاگ نقرهای رو به پشت سرش اندا. گوشوارها به زمین که خوردن تکه تکه شدند و هر تکه به سخری سنگی مبدل شد نیمه های شب ها با سختی از بین سخراها راهی پیدا کرد و با قدم های بلند به بچه نزدیک و نزدیک تر شد دخترک و برادرش دوباره به حراس افتادن برادر با دست پاچکی گفت خواهر چی کار کنیم؟ پدر از سخراها هم عبور کرد دخترک سراسیمه اطراف رو برانداز کرد هیچ چیز جز تاریکی دیده نمیشد نگاه حراسان برادر توی آسمون چرخید خواهر نگاه کن قرص ماه چهارده میتونیم از اون کمک بخواییم دخترک با خوشحالی گفت ای ای ماه مهربون پدر میخواد من و برادرمو برای زمین قربانی کنه تو تو به ما کمک میکنی ماه شب چهارده که قرص کامل بود لبخندی زد و گفت ای دختر مهربون اول به من بگو توی بخچت چی داری دخترک دستش رو داخل بخچه کرد به جز تک آینه کوچک چیز دیگه ای توی دستش نیمد. دخترک با لحن گینه گفت تنها یادگار مادرم همین آینه است. ماه شب چهارده گفت آینه رو پوش سرت بنداز. دخترک توی آینه نگاه کرد. انگار تصویر مادرش بود که توی آینه نقش بسته بود. چهره مهربون و معصوم. دخترک به تصویر خیره موند. برادر بتوندی آینه رو از دست خواهرش قاپید و به پشت سرشون انداخت اما آینه به سنگی برخورد کرد و شکست و یه دفعه به دریای بیکرانی با موجهای بلند تبدیل شد. کشاورز فوری با چاقویی که توی دست داشت به جان درختان کنار دریا افتاد تا با اونها قایقی بسازه در این موقع برادر رو به خواهرش کرد و گفت خواهر من خیلی تشنم به از این آب دریا بنوشم خواهر تا این رو شنید بتوندی گفت نه نه نه نه آب دریا شوره اگه از اون بخوری بیشتر تشنه میشی برادر با های خشکیده گفت ولی ولی من خیلی تشنمه خواهر گفت یکمی صبر کن تا به چشمه برسیم یکمی صبر کن بچه ها با وجود اینکه خیلی خسته بودند باز به راه خودشون ادامه دادند اونا رفتند و رفتند تا به چشمه ذلالی رسیدند برادر به محض دیدن چشمه به طرف اون رفت و با خوشحالی گفت آب آب چه آب ذلالی آه که چقدر تشنمه و خم شد تا از آب چشمه بنوشه ولی چشمه گفت ای پسر مهربون میدونم که خیلی تشنهای ولی اگه از آب من بنوشی به شکل آهو در میایی پسرک که سخت تشنه بود طاقت نیاورد و چند مشت آب از چشمه نوشید و چند لحظه بعد به آهوی کوچکی با چشمای درشت و سیاه رنگی تبدیل شد دخترک از اینکه برادرش به آهو تبدیل شده سخت غمگین و افسرده شد و شروع کرد به گریه کردن. حالا گریه و کی گریه کن ولی هیچ فایده نداشت که نداشت. هوا کاملا تاریک شده بود و از دور دست ها صدای زوزه گرک های گرسنه به گوش میرسید. دخترک به همراه برادرش که حالا به شکل آهوی کوچیک در اومده بود، آسان در کنار دریایی استادند. دخترک رو کرد به درخت بلند چناری که در کنار دریا بود و گفت ای چنار مهربون، خواهش میکنم ما رو بین شاخهات پنهان کن. درخت چنار تکونی به شاخه های خودش داد و بعد شاخه هاش رو پایین آورد و دخترک و آهوی کوچیک روی شاخه های درخت نشستند. چنار یه باری دیگه به خودش تکونی داد و شاخهاش رو بالا دوباره دخترک و آهو که همون برادرش باشه به راه افتادن هنوز چند قدمی دور نشده بودن که چشم اونا رو صدا زده گفت یادتون باشه از اینجا که برین به یه نیزار میرسیم از لابلای این نیزار آوازهایی به گوش میرسه که خیلی زیبا و دلنشینند دخترک با خوشحالی گفت آوازهای زیبا و دلنشین؟ نشین آخ خدای من من آواز رو خیلی دوست دارم چشم گفت ولی باید برادرت به این آوازها ها بی تفاوت باشه و انگاری هیچ آوازی رو نمیشنوه. آهو نباید به پشت سرش نگاه کنه یادت باشه دخترک با نگرانی از چشم پرسید؟ خب اگه به پشت سرش نگاه کرد چی میشه؟ چشم گفت. اون وقت اون چشم از شماها دور میشه. دخترک با خودش گفت باید خیلی مواظب برادرم باشم اون نباید به پشت سرش نگاه کنه دخترک و برادرش آهو دوباره به راه افتادن هنوز چند قدمی به جلو بر نداشته بودن که نیها شروع به آواز خوندن کردند. آهوی کوچیک گوشاش رو تیز کرد و سرش رو برگردوند و در نتیجه چشم از اونها دور شد دوباره که به راه افتادن باز هم صدای نیها بلند شد و آهوی کوچیک این بار هم سرش رو برگردوند و باز چشمه از اونها دورتر شد و ما بشنوید از مرد کشاورز که همون پدر بچه ها بود بله مرد کشاورز در این مدت در اون طرف دریا با قایقی که با چوب ساخته بود هنوز در تعقیب بچه های خودش بود در این موقع دریا به خروش اومده گفت آهای کشاورز چرا دنبال بچهات هستی؟ کشاور کشاورز با تعجب و شگفتی به اطراف نگاه کرد چیزی جز دریا پرخروش و بیکران ندید فکرت خیالاتی شده و دوباره به جلو پیش رفت این بار دریا با صدای رساتری گفت آهای کشاورز نگفتی چرا بچه ها تو دنبال میکنی مرد کشاورز باز هم مات و مپوت به دنبال صاحب صدا به این طرف و اون طرف نگاه انداخت این بار دریا اونو تهدید کرد اگه جوابم رو ندی با موجهای بلندم تو قایق چوبیت رو به می میکوبم مرد کشاورز از ترس سر جاش خشکش زد صدایی که میشنید شبیه صدای زن قبلیش بود. حیرت زده نگاهی به سطح دریا انداخت. آب دریا مثل آینه شفاف و صاف شده بود. چهره زن سابقش که سالها پیش بر اثر بیماری مرده بود در دریا نقش بسته شده بود. حرق سردی روی پیشونی مرد کشاورز نشست. بعد بغزش درکید به آرومی تمام ماجرا رو برای دریا بازگو کرد. دریا گفت. مگه با چشمای خودت ندیدی که خورشید و کوه و ماه و ستاره آسمون به بچه هات کمک کردن؟ ها؟ مرد کشاورز به آرومی سرتگون داد و زیر لب گفت. چرا؟ چرا؟ دید در یا ادامه داد. اونا به خواست خدا شاهد رفتار بد زنت با بچه هات بودن. اونا میدونستند که زن جنست چه نخشی شومی برای نابودی این بچه های مهربون و معصوم کشیده. مرد کشاورز با آرومی گفت، اینا درست، من شما اطمینان میدم به محض رسیدنم به خونه، زن بدجنسم رو مجازات کنم، ولی، ولی چرا زمین من محصول خوب نمیده؟ دریا گفت، ها، علت این کار بی ایمان بودن توه، تو اگه با ایمان بیشتری کار کنی و به لطف خداوند امید داشته باشی، محصول خوبی به دست میاری. مرد کشاورز که حالا به اصل ماجرا پی برده بود با پشیمونی گفت من تازه متوجه قضیه فرار بچهها شدم من من باید اونا را هرچه زودتر پیدا کنم از بچهها اذخوایهی کنم و بعد اونا را به خونه برگردونم خدایا خدایا منو ببخش چه اشتباه بزرگی در حق بچهها کردم اشک ندامت و پشیمونی از چشمای مرد کشاور سرازی شد و با بغز از دریا پرسید حالا چی چطوری بچه ها پیدا کنم؟ دریا خنده ای کرد و گفت سب <تصفيق> داشته باش من کمکت میکنم که زودتر بچه ها تو پیدا کنی مرد کشاورز خوشحال شد و احساس کرد دلش برای بچه هاش خیلی تنجد مرد کشاورز با قایق چوبیش پیش رفت و رفت تا به نزدیکی بچه‌ها رسید دختر با دیدن پدرش که به سرعت به طرف اونها میومد هارسان رو کرد به درخت چنار و گفت ای چنار بلند سر تو خم کن و کمکم کن تا از چشم پدرم پنهون بشم دختر رو کرد به آهوی کوچیک و گفت برادر تو پای همین درخت بشین و حرفی نزن تا پدر صدای تو رو نشناسه آهو یک سری تکون داد و دختر روی شاخی از درخت چنار نشست و بالا رفت. کشاورز وقتی به ساحل رسید از قایق پایین اومد و به طرف درخت چنار اومد. آهو با شنیدن صدای پا ترسید و پا به فرار گذاشت. دختر هم از فرار برادرش دست باچه شد و خواست تکونی بخوره که یه دفعه از بالای درخت به درون آب دریا افتاد. آهوی کوچیک که شاهد افتادن خواهرش توی دریا بود شروع کرد به گریه کردن. مرد کشاورز هم که هیچ رد پای از بچه هاش پیدا نکرده بود روی ای رفت و از شدت قصه بغزش ترکید. آهوی کوچیک که پشت کوه پنهون شده بود به کناری دریا اومد و با صدای بلند و بغزالوت شروع به ناله کرد و گفت ای خواهر از دست نامادری بچنس آواره صحرا شدیم. خورشید، کوه و ستاره های آسمون کمکمون کردند. اما دریا تو رو بلید حالا من تک و تنها چه کنم؟ صدای خواهر از ته دریا در اطراف پیچید. ای برادر، قصه نخور. تنم تو شکم ماهی و موهام همراه موجهای دریا. مرد کشاورز وقتی صدای بچه ها رو شنید متوجه تمام ماجرا شد و به سختی گریه کرد و گفت ای عزیزا من منو ببخش من اشتباه کردم آهوی کچلو که همون پسر کشاورز باشه وقتی صدای پشیمونی پدرش رو شنید با خوشحالی به طرف پدرش رفت و هر دو یه صدا گفتن ای ماهی مهربون ما رو کمک کن همونطوری که کوه و خورشید و ستارهای آسمون کمک کردن تولی نکشید که ماهی بزرگ به کنار ساحل اومد و دهانش را باز کرد دختر مهربون سوار بر موجی از آب از دهان ماهی بیرون آمد و روی ساحل افتاد کشاورز به کمک دختر مهربونش آهوی کوچیک رو به چشمه پایین کوه بردن و با خوردن آب زلال اون چشمه آهو به شکل اول خودش برگشت و هر تاشون با خوشحالی به طرف آلاچیق خودشون برافت نامادری بدجنس هم از دیدن مرد کشاورز و بچه هاش که دست در دست هم دیگه داشتن پا به فرار گذاشت و به دیاری نامعلوم رفت و بار دیگه مرد کشاورز و همراه دو فرزندش به خوبی و خوشی در کنار همدیگه زندگی کردند افسانه دختر در بخچت داری رو براتون نقل کردن در این افسانه با نمادهایی روبرو شدیم که هر کدوم پیامی رو در خودش نفته داره از طریق این نمادها میشه به مفهوم رمزی روایات قدیمی پی برد. پس افسانه ها رو نمیشه ساده انگاشت واقعا افسانه ها سرشار از راز و رمز و حکمت این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالکور اجرا مهران دوستی صداوردار داریوش گودرزی